یک ساعت با او صحبت کردم خودخواهی او را برانگیختم. هر وقت می دوید توی حرف من فرصت هفت زدم به او نمی دادم نوع دیگر استداد می کردم. گاهی خندهش می‌گرفت، گاهی فکر گستاخ من را تحسین می کرد. زمانی متفکر می‌شد و حوادث را پیشبینی می‌کرد. استاد را نمی فرار دهد می توانست او را از زندان نجات دهد و به تبعید بفرستد. من قبول کردم. این آخرین پناهگاه من بود. این آخرین وسیله بود که برای نجات تنها معشوق خود در زندگانی برایم باقی مانده بود. چاره ای نداشتم. من می بایستی او را قانع کنم. یا اگر موفقیت نصیبم نمی شد چه بکنم. بالاخره به من قول داد که یک راست برود به دربار و آنجا با شاه صحبت کند و بکوشد او را متقاعد سازد که رهایی استاد مخصوصاً حالا که دیگر از او کاری ساخته نیست به سود عل حضرت است. به او خواهد گفت که ماکان در میاد مردم فهمیده نفوذ دارد. رجال وقت او را میشناسند. دستگیری او نارضایتی تولید کرده. کشتن او در مطبوعات خارجه سر و صدا را خواهد انداخت و صلاح در این است که موضوع را از لحاظ سیاسی مورد توجه قرار داد ایراد میگرفت و من میکوشیدم او را قانع کنم جالب این است که من خودم هم به حرفهایی که میزدم ایمان نداشتم و آنچه که از خداداد یاد گرفته بودم تکرار میکردم پرسید خب اگر نقشه ما عملی شد و ما چنین خبری به روزمهای دنیا دادیم آن وقت کینه شاه از استاد بیشتر خواهد شد و یقینا او را سر به نیز خواهد کرد اول جوابی نداشتم بدهم، زیرا حقیقتی در آن نهفته بود اما برای من از این ستون با آن ستون فرج بود حالا باید او را از زجر و نابودی نجات داد چه کسی می داند که فردا چه خبر خواهد شد؟ گفتم نه nah, اینطور نیست اگر شما به دنیا اعلان کنید که دستور دادند او را در زندان مصموم کنید و شما به این جنایت تندر ندادید نمی توانند او را بکشند زیرا راستی گفتار شما مسلم می شود از این جهت هم شده استاد در امان خواهد بود زیرا راستی گفتار شما مسلم می شود و نمی توانید او را از زندان فراری دهید. هرچه که کردم زیر بار فرار او نرفت. حتی مرخصی او را صلاح نمی دانست. یقین داشت که جلب سوءزن خواهد کرد. مخصوصاً با گزارشی که سابقا درباره ملاقات او با مخالفین رژیم دیکتاتوری در برلین به شاه داده بودند. مرخص کردن استاد غیر ممکن بود فقط موافق بود که او را به یکی از شهرستان خراسان بفرستد و به همین قصد از پیش من یک راست به دربار رفت قرار ما این شد که در خانه منتظر باشم و هر وقت به شهربانی برگشت از آنجا به من تلفن کند و من به دفترش بروم و از نتیجه اطلاع حاصل کنم هنگام خدافیزی دست مرا بوسید میخواست لبهای مرا را ببوسد. من صورتم را خواندم و او توانست فقط گونه راستم را ببوسد. نتیجه این شد که او را با یک صاحب منصب و دو مأمور اداره سیاسی به کلات تبیید کردند. دیگر از او خبری ندارد.